در زمانهای قدیم دو برادر بودند یکی از اون دو ثروت زیادی داشت و دیگری هم برعکس برادرش آدم بدبختی بود حتی برای گرم کردن جایی که در اون زندگی می کرد هیزم نداشت در یکی از سالها سرما و یخبندان زیاد شده بود ناچار تصمیم گرفت به جنگل بره و هیزم تهیه کنه اما چون اسب نداشت نمی دونست باید به چه وسیله هیزم رو حمل کنه با خودش گفت. بهتر پیش برادرش بره و اسبش رو قرض کنه. البته برادر ثروتمند اسب خودش رو به او داد. اما گفت اسب رو بهت میدم ولی سعی کن تا بار اون زیاد نباشه و خسته و فرسوده نشه. به علاوه تا حالا باید به روحیات همدیگه خوب آشنا شده باشیم. تو نباید به من اعتماد داشته باشی و هر روز چیزی از من بخوای. من اسبم رو امروز تا فردا بهت قرض میدم ولی بعدها سعی کن پیش من نیای. برادر بدبخت به منزل رفت اما ناگهان به یادش اومد که برای اسب تسمه ای تهیه نکرده با خودش گفت چرا زودتر یادم نمیاد تا از برادرم بگیرم ولی رفتن پیش برادر نتیجه نداشت چون برادرش به او تسمه ای نمیداد ناچار سرتمش رو به دم اسب محکم بست و به راه افتاد موقعی که به طرف منزل می رفت سرتمش به تنه درختی گیر کرد و بدون اینکه به این جریان توجه کنه اسب رو به شدت شلاق زد اسب هم سرکش بود و با یه جهش خیز برداشت و دومش از جا کنده شد برادر ثروتمند وقتی که دید اسبش دوم نداره بنایه داد و فریاد رو گذاشت و گفت تو اصبمون ناقص کردی باید خسارتشو رو بپردازی ناچار هر دو برادر به طرف شهر حرکت کردند تا پیش قاضی برند موقعی که به شهر می رفتند برادر بیچاره به فکر فرو رفت و با خودش گفت من که تا حالا پا به دادگاه نگذاشتم. ولی ضرب مسئله معروفی هست که میگه اگه ضعیف هستی با آدم قوی در نیفت اگه آدم بدبختی هستی با آدم ثروتمند دعوا نکن بدون شک برادرم منو محکوم میکنه بعد هر دو برادر از روی پلی که نرده نداشت عبور کردند ناگهان برادر بیچاره پاش لغزید و از روی پل به زمین سقوط کرد در زیر پل مردی با سورتمه این حرکت میکرد و پدر پیرش رو برای معالجه به شهر میبرد برادر بیچاره روی سورتمه افتاد البته به خود او ای نرسید ولی پیرمرد مسافر از حال رفت و بلافاصله مرد راننده ی سورت می گفت باید پیش قاضی بریم ناچار هر سه نفر به طرف شهر حرکت کردند مرد بیچاره کاملا ناامید شده بود و با خود گفت به این ترتیب محکومیت من حتمیه ناچار در وسط راه سنگ بزرگی از روی زمین برداشت و زیر لباسش مخفی کرد و باز هم به خودش گفت موقعی که محکوم شدم این سنگ تنها چاره کاره اگه قاضی منو کمک نکنه و بخواد محکومم کنه اونو با همین سنگ خواهم کشت به این ترتیب به دعوای اولی دعوای دومی اضافه شد و قاضی به داوری پرداخت از اونها سوالاتی کرد مرد بیچاره به قاضی نگاه کرد و سنگ رو از زیر لباسش بهش نشون داد و آهسته و آروم به قاضی فهموند که یه چیزی به همراه داره سه بار سنگ رو از زیر لباس به قاضی نشون داد قاضی به فکر فرو رفت و با خودش گفت یعنی چی زیر لباسش مخفی کرده؟ پوله؟ تلاست؟ دوباره نگاهش کرد و با خودش فکر کرد اگه پوله پس حتما باید مبلغ خیلی زیادی باشه پس حکمش رو اینطوری صادر کرد مرد بیچاره باید اسب رو اونقدر پیش خودش نگه داره تا دم اسب دوباره رشد کنه و به شکل اولش ظاهر بشه. به سورت مهرانم گفت چون مرد بیچاره از روی پل لغزیده و سقوطش باعث مرگ پدرش شده، او هم باید از روی پل سقوط کنه و مرد بیچاره رو بکشه. داوری به این ترتیب خاتمه پیدا کرد. وقتی قاضی حکمش رو صادر کرد، برادر ثروتمند گفت: عجب چقدر بد شد حالا که اینطوره من اسبم رو همین شکلی که هست قبول میکنم و از شکایت خودم صرف نظر میکنم ولی برادر بدبخت گفت نه برادر همونطور که قاضی دستور داده عمل میکنیم اسبت رو اونقدر نگه میدارم تا دومش دوباره بلند بشه و رشد کنه برادر ثروتمند کنان گفت خب پس من سی روبل بهت میدم و اسبم رو به همین شکلی که هست ازت پس میگیرم خیلی خوب در این صورت منم موافقم برادر ثروتمند سی روبل پول داد و اسبش رو پس گرفت. شاکی دوم هم به اون مرد بیچاره گفت: گوش کن، منم تو رو میبخشم چون هرقدر قطه فکر کنم تو نمیتونی پدرم و زنده کنی. مرد بیچاره گفت: به هیچ وجه، هر طور که قاضی دستور داده باید عمل کنی. لازم خودتو از بالای پل به زمین پرت کنی و منو بکشی. اون مرد گفت: من نمیخوام تو رو بکشم، بهتره با هم سول کنیم و برای این کار صد روبل بهت میدم. مرد بیچاره صد روبل رو هم از اون گرفت و رضایت خودش رو اعلام کرد. وقتی که میخواست حرکت کنه، قاضی او رو خواست و گفت: بیا ببینم، چی زیر لباست به من نشون دادی؟ تحویل بده. مرد بیچاره سنگ رو از زیر لباسش درآورد و اون رو به قاضی نشون داد و گفت: این همون چیزیه که قبلا بهت نشون دادم. همون موقع بهت فهموندم که پیش از حکم و قضاوت به این چیزی که زیر لباس منه نگاه کنی. اما اگه منو محکوم می‌کردی، من تو رو با همین سگ میزدم." آن وقت قاضی فکر کرد و با خودش گفت بدون شک کار خوبی انجام دادم چون اگر غیر از این بود او رو محکوم می کردم و الان زنده نبودم. مرد بیچاره هم با خوشحالی پولا رو برداشت و در حالی که آواز می خوند و سوت می زد به طرف خونش حرکت کرد.